سفابات خیابان سی و اثر سینا دادخواه گویندگان علی دنیاوی ساروی مرگم پاکزاد، سحر مشرفی، آرمان سلطانزاده تهیه کننده، دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه بخش اول بیس دقیقه است دارم توی این سگلرز این میکنم. پا, پا می کنم گلستان دارش می شود و سیل آدم تشنه را پشت صد آجوریش بند میآورد. حسابش دیگر از دستم در رفته که چند بار این پله های سنگی را بالا پایین کردم شست پوم توی جورا به پشمی عادید قندیل بستو دستام مثل خرس های قطبی تو جیوان به خواب عمیق زمستانی فرو رفتند. پوست صورت ما سر ما می ولی تا وقتی ندان نیامده نمیخواهم خواهم بروم توی پاساش. اتوبان همت شلوغ است، اما روان. خطی های ونک شهرک همت رو خوب میشناسند. میاندازند لاین سرعت و به ماشین جراییشان چراغ می دهند و اگر ماشین جلویی کنار نکشید یک لایی فرمول یکی میکشند و می لاین دو. تاکسی ندا حالا دارد به ماشین جلویی چراغ می دهد ندا به کابلهای برق وسط اتوبان خیره شده و توی این فکر است اگر تهران یکی در در چی به سران دکلهای لندهور می آید پسرها حالا باید سرماهای سختر و خورند تا با سی و هفت حرارت عاشق دخترها بشوند برای همین است که به ندا زنگ نمی زنم و نمی کجایی کجای ندایی؟ ندا دیشب توی تلفن به من گفت. میخواهم بوده ساق بلند بخرم بوت پارسادی هم حسابی از ریخت و قیافه افتاده پس بیا برویم گلستان بعضی وقتا چند سال پیش همین دیروز یا پریروز است با سپید خیلی پاساژ گلستان میامدیم نه تنها این پاساژ همه پاساژهای بزرگ تهران دول و پاساش های تهران قسمتی نامرگی از ابعاد ما شده بود من چقدر از وقتی با سپیده به هم زدم؟ عوض شدم عوض یا عوضی؟ چه فرقی میکند وقتی حتی رنگ چشم های سپیده یادم نیست؟ خودش میگفت زیتونی ولنتاین پارسال که برایش خرت و پرت خریدم برای خوشمزدگی یک شیشه روغن زیتون کاربانل هم توی جعبه گذاشتم و روی جعبه نوشتم به چشمهای گاویت که امسال یک سال دیگر گاوتر می‌شوند و شکلک وینک توی چت را بغل دست جمله‌ام کشیدم. <تصفيق> سپیده مثل همیشه خودش را به سورپرایزی زد و توی گوشم آهسته گفت این شیشه های من است که پای تو ریخته‌ام. و من گفتم قربان رمانتیک چرب و چیلی خودم براوام من اشک دوست ندارم لبخند گال و گشاد دوست دارم. اردی بهشت هیچ وقت ماه خوبی برایم نبود. درخت توت مثل همه اردی بهشت ها میوه داده بود. من و زیر درخت توت دانشگاه نشسته بودیم. سپیده پرسید سامان چرا ما با همین وقتی دیگر حرفی نداریم با هم بزنیم؟ گفتم ای وای باز هم سوال فلسفی کدام علاقه کره خری گفته حرفی نداریم با هم بزنیم؟ نکند بعد از سه سال انتظار داری شب و روز تنگ هم به چپیم و عین تازه واردها ساعت به ساعت برای هم اسمس عاشقانه بفرستیم دلم برای همین تنگ شده عین تازه واردها پس بگرد دنبال یه تازه وارد دانه بزرگ شاه توت تلاپی افتاده بود روی سرم به بالا نگاه کرده بودم تا بفهمم کدام شاخی توت چون این لطف بزرگی در حقم کرده و گویی را که دیگر نمی‌خواستم ادامه بدهم کات کرده. سرم رو که پایین آوردم، سفید دیگر بغلستم نبود سر کلاس ها هم دیگر را می دیدیم اما انگار دختر و پسری مرد و نامرئی در یک مکعب نامرئی داشتن به منظری نامرئی نگاه میکردند. کردند تر ترم آخرش بود و از وقتی فارغ تحصیل شده او را ندیدم همه پاساش های تهران را متر به متر با هم راه رفته بودیم طول و عرض پاساش ها سفید هر کسی بود یا نبود باعث شده رؤیای جهانی به من سرایت کند. ممنونم سپیده. می دانستم می عکاس مد بشوم. حتی اگر لازم باشه سوار دوچرخم بروم آن سر دنیا. مد مارک برند. کروات ای به پیراهن سیاحت نمی آید. آن راه را کرمه قشنگ تر است. گراش را شال شل بندی ها. دهاتی، سنجق کروات و دکمه سراستین صد سال است از مد افتاده. زارا فقط زارای پاسا بچه نشو، شلوار رانگلر حتی توی تیراژ هم فیک است تامی زعفرانی حرف ندارد. لویویتون الهی علکی گران است. بنتون ونک پاییزه آورده. با سینی عباس آباد سیل زده. وقتی می رفتیم توی نمایندگی ها انگار وارد شهری نامرئی می شدم. نور رنگ. آه، چوب لباسی های ازدی. که اگر چشم فروشنده را دور میدادم یواشکی یکی دوتاشان را توی گوله هم میگذاشتم. ساکه خریدهایی که بعضی وقتها از خود لباس هم قشنگ تر بودند. حتی اگر می نمایندگی دارد از دم برند فیک به مردم غالب میکند قشنگیها قشنگی ها پا بر می مندند. سپیده همیشه می پسر یعنی ساعت و گفش. بعد از چند ماه ندیدن سپیده هنوز به ایده های پسرانش وفادار ماند نگاه اخمویش وقتی سر درست را را آید نکرده بودم یادم میآید و چشمک که دوست داشتنیش را که استثنان این دفعه اشکالی ندارد هانی یادت نبود داریم یک مهمانی رو در می رویم امشب خدا رو شکست هم کامل است ساعت صفحه بزرگ کالوین کلین و پالتوی مشکی ماسیما دوتی. برای خودم یک پا دانوی شدهام شده هم پالتوی ماسیما بود که سپیده با اولین حقوقش برایم خرید. پالتوی که امشب قرار است برایم شانس بیاورد آزر ماه بود سپیده توی اور نایلونی پالتوی کارت صورتی گذاشته بود که به دونویتوی آرتیست خودم برای روزهای سرد امروز یک روز سرد است و پالتو و خاطری پالتو دارند بدن روبه انجمادم را گرم میکنند. کنند دون ویتوی آرتیست بعد از چند ماهی که به کردن و ور رفتم با مینی لب و دی لنز و کفت و زهرمار عکاسی، دیت عاشقانه دارد ندا دیر کرده است کابل های برق فشار قوی همت و ترافیک میدان صنعت دست به دست هم دادند ندا حتم با دیدن برج میلاد به دانشگده فنی افتخار میکند اما این دست خر شاخدار اصلا افتخاری ندارد نداره بعد از چهار سال دوباره توی مهمانی شب یلده نجات دیدم. با دسته گل بزرگ و کفش پاشنه بلند تق تق کنان آمده بود حال طبقه بالا. ندیده نداره شناختم. خودش است. نه. نمیشه و چیزهایی که درباره زمین گرد میگویند راست عذاب در بیاید. شما خواهر نیمایید؟ نیما فغانی. اینجا چی کار میکنید؟ به خودم روز آخر دبیرستان را که قبرستان حافظان فرستادم از چیپس سرکه نمکی بدن میآید و از سرکه و از نمک از پسرهایی که دور موهاشان را سفید میکنند و زنجیر طلا گردنشان میاندازند و تیشرت های عجق وجق میپوشند از همه پسرهایی که شبیه نیمای شما هستند بدم میآید نیماتان هنوز جلوراه بچه ها را میگیرد و طوری بهشان سیلی می میزند که جای چهار انگشتش روی صورتشان بماند هنوز هم دستهاش سنگین است نکند شما هم به نیماتان رفته اید. استاد نجات می توانم این خانم محترم را به بیرون راهنمایی کنم؟ روز آخر دبیرستان بود و امتحان نهایی حسابان رفته بودم از دکه روزنافروشی جلوی دبیرستان چیپس سرکه نمکی بخرم. بچه ها آنور خیابان منتظرم بودند. چیپس را خریدم و بازش کردم و یک مشت پر چپاندم توی دهانم تا قبل از آنکه بچه ها دخلش را بیاورند به خودم چیزی رسیده باشد. تیتر های ورزشی را می‌خواندم که احساس کردم آدم گنده‌ای از پشت رویم سایه انداخته. برگشتم عقب تا صاحب سایه را ببینم. نیما بود. چهارشنبه سوری پارسال دعواش را با بچه های بیمه جلوی بلوک به چهار دیده بودم. شبهایی که از محلهای دیگر می‌ریختند توی اکباتان از این دعواها زیاد پیش می‌آمد. چهارشنبه سوری، ولنتاین، شام غریبان، نمیدانم نیما توی نگاهم چی دید که یک دفعه آمد جلوتر. داش، یه پر چیپس به ما میرسد. بوی درد سر می آمد بچه ها خیابان با استراب من و نیما را نگاه میکردند. بسته چیپس را لرزان گرفتم طرفش نمیدانم از کجا سر و کلهی دوتا از رفیخ در داغانش هم پیدا شد رفیخ با خودش مون می زدند اون دوتا که آمدن نیما شیر شد و برای آنکه که جولانی بدهد بسته را از دست من قاپید اینم سهم ما ستا دش باخت راه گلویم رو گرفته بود یکوزد به سرم و زدم زیر دست نیما و تکیه های چیپس روی زمین پخش و پلا شد زور میزدم گریم نگیرد که یکو سمت چپ صورتم سوخت چشمام سیاهی رفت و گوشم سود کشید نیما فقانی از من و همه بچه دبیرستانی های آنور خیابان زهره چش گرفته بود سه جفت چشم با تحقیر رو خنده نگاهم می کردند سیلی را که خوردم سرم برگشت روی روزنامه ورزشی پایین پاهام واخد خانگی استقلال، سقوط هشت پله ای ایران در رنکینگ فیفا، قوانین جدید کشتی. یکو نمیدانم چرا عقبکی رفتم و ولو شدم روی پارسنگی که روی روزنامه ها گذاشته بودند تا باد نبردشان. مرد روزنامه فروش زده بود به من که روی روزنامه ها نشسته بودم و نیما که بالای سرم ایستاده بود. یکی دو هفته بعد یکی از همکلاسی ها که سیلی خوردنم را تماشا کرده بود، توی پاساژ فاز یک. دختری با مانتوی سرمه دبیرستانی و مغنع عقب رفته نشان هم داد که داشت ویترین آرایشی بهداشتی سوپرسه را نگاه میکرد. میشناسی که؟ خواهر نیما فغانیه. ندا؟ اسم نیما را که شنیدم صورتم دوباره شروع به سوختن کرد. گوشم سوت ممتد کشید. توی این چهار سال قیافت زیاد عوض نشده ندا. فقط ابروهایت را برداشته ای. چرا من دارم جلوی پاساش گلستان قدم میزنم و با خودم حرف میزنم چرا با تو دیت دارم؟ جواب بعضی سآلها رو فقط دیوانها می دانند. شب مهمانی یادم از گفتی دانشگاه تهران درس میخوانی باورم نمی شود از سرنوشت خانوادگی فرار کرده باشی. چند سال نوری بین تو و نیما فاصله افتاده؟ یکی دو سال پیش شنیدم نیما تان گند بالا آورده و قیبش زده. خودت چی فکر می پرت هیچ وقت به پر نیما نگرفته؟ تو این چهار سال حتی وقتهایی که مست مست، دستم توی دست سپیده بود، گاه و بیگاه یادت میافتدم. دورا دور ازت خبر داشتم. همون موقع ها از اکباتان اسباب کشی کردید. دانشکده فنی و مهندسی عمران؟ ندا، تو هیچ وقت نمی‌فهمی نیما واقعا کی بود. خیلی ها توی دبیرستان می‌خواستن مثل نیما فقانی باشند. لات خوشگل دخترباز. حافظ منافع بچه های شهرک. میدان نوری ها و جنت ها و بیمهایها ها مثل قارچای سمی توی اکباتان تکسیر شده بودند و بازار دعواهای محلی داغ داغ بود شهررام دراغون از نیما فقانی حساب میبرد کم آدمی نیست بر خودش ساغی و ودکا و آبجای شهرک علی ژاپنی را چه میگویی؟ شنیدم هر وقت نیما میرود سراغش باش مجانی حساب میکند هشته ساله و روپا واک بند تو خودت همه اینها رو میدانستی و برای همین دبیرستان دخترانه شهرک نمیرفتی. میرفتی مرکز شهر دبیرستان فیروز بهرام از اکباتان دو ساعت راه را میکوبیدی و میرفتی وسط شهر تو هم کلاسی هایت تو رو به سادگی همین ندافقانی بشناسند نه فلانی خواهر نیمافقانی تو هم های تابلوی توی کفت هی hey, ازت نپرسند از داداشی من چه خبر؟ شاید هم خجارت میکشیدی زهرهای پنشنب را با یکی از دخترین کارهای دبیرستان چیک تو چیک کنج پله فرارهای فازه یک ببینی جای آن چهار انگاش روی صورتم باقی مانده و وقتی یاد روز آخر دبیرستان میافتم گوشم هنوز سوت میکشد نیما را بخشیدم همه ی مودور سفیدهای زنجیر طلا رو بخشیدم ندا تو هیچ وقت نمیفهمی وقتی کرانتری 135 آزادی آمد و چسبید بغل گوش شهرک چند میلیون رؤیا را با خودش شست و برد. نصف همسن سال من با عشق لاتی نیما و دارادش بالغ شدند. شاید خیلی شبها با این رویی از خواب پریده باشی که نیماتان یک شببه آدم دیگری بشود. ولی میدانی چندتا آدم میخواستن یک شببه نیما فقانی بشوند؟ یک چیز خندهدار بهت بگویم توی این چهار سال حتی یک بار هم لب به چیپس نزدم. از نه؟ باورت می شود حتی به سپیده هم چیزی از آن چهار انگشت نگفتم؟ دبیرستان برای من با رد چهار انگوش روی گونه چپ هم تمام شد. یادگاری خوبی از دوازده سال پشت میزانیم و نیمکد نشستن و رژه اعداد و حروف را روی تخت سیاه تماشا کردن. حالا با دیپلم ریاضی برای خودم یک پا بچه هنری شدم. فقط به خاطر امتحان نهایی حسابان از ریاضی بدم آمد. حالا جای پلیتکنیک؟ تکنیک دارم بغرغوشه پوری تکنیک درس میخوانم. با رد چهار انگاشت روی صورت حتما تقدیرم این بوده که جای هنرهای زیبا از دانشگاه هنر سر در تا تو را بر حسب تصادف توی دانشگاه تهران نبینم راستی حامد نجات به نظرت چطور آدمی است از متد تدریسش راضی هستی چند سالی نیویورک بوده بهجش حتما امریکن امریکن است کانون زبان با حال هر, هر کسی رو برای تدریس راه نمیدهد چند هرم از شاگردش هستی که میهمانیش دعوتت می کند؟ دستگار شب مهمانیت خیلی های کلاس بود حالا لطف کن و زودتر بیا تا برویم گلستان را برای یک جفت بوت مارکدار خوشگل زیر رو کنیم یک قوطی خالی کنسرو هم جلوم نیست که با پاشوت تاش کنم خیابان ایران زمین و له شدن قوطی را زیر چرخهای پهن سانتافه های سیاه ببینم که تخت گاز به پرسپکتیو میپیوندند دون ویتوهای آرتیست هیچ وقت خدا حاصل سر نمی روید و توی هر شرایطی خودشان را سرگرم میکنند اگر از شانس بعد یکی از پدرخوانده های رقیب حوصله دونویتو را سر ببرد دون به یکی از گلتشنهای طبحکارش می میگوید: شبانه به خانه یارو برود و محض سرگرمی هم شده لبا زنش را کش برود و فرداسو با پست پیشتاز برایش بفرستد <تصفيق> سرگرمی من حالا قراری عاشقانه دارم قراری به صرف تأخیر و سرمایه استخانسوز می بینی چه آخر و زمانی شده؟ اصلا بعید نیست همان سانتافه سیاه از دردار کردن ایران زمین خسته بشود و راننده ژیگولش راست بکند در ادافهای توی گلستان را دید بزند و بیاید همینجا جلوی من پارک بکند و بیان که حواسش باشد آب گلالود کنار جدول را به پالتوی ماسیما دوتی هم بپاشد. کلکسیون سرمایه استخوان سوز و ندای اینجوری کامل تر می شود. همه چیز برای شبیه رمانتیک معیاست؟ مثبت فکر کن: نباید توی کار سرنوشت و پیشانی دخالت کنی؟ پیشانی ها دوست دارند خودشان دست تنها همه چیز را پیش ببرند. به این فکر کن کدام برند بود های خوشگل تری دارد. سپید بودهایش را از کجا می خرید ؟ آدیداس فقط از آن کتانی های رنگاورنگ رنگ پرپری دارد که آدم را یاد دوی ماراتون سالمندان می اندازد. زارا؟ زارای است که پیدا نمی شود نایک نایک بوت ساق بلند ندارد کاترپیلار کاترپیلار چطور داد؟ انگلیسی هم به خوبی تو نیست ولی می دانم کاترپیلار به زبان انگلیسی می شود کرم عبریشم بوتهای سبک خردلی کاترپیلار را اگر پات کنی به ثانیه نمی کشد که پروانه استوایی می شوی و بال بال زنان از پاساژ گالستان میروی بیرون آلستار <تص> و چنل و درچه را هم بیخیال. اول و آخرش باید پای تو کاترپیلار ببینم باید هرچه زودتر تو این فصل قهده توت پروانه اصطوایی به شوی کرمه ابریشم بگذار ببینم آبربانک هم همراه ما هم هست یا نه شاید نداز بود یا هستن کتانی کرمه ابریشم خوشش بیاید و پول کافی همراهش نباشد توی کیف پولم را نگاه میکنم عکس سفیده را هنوز از پشت طلق کیفم در نیاورده آبربانک سر جایش هست. با دخترها توی پاساش های تهران گشتن، سیستم شتاب را مادامال عمر سوداور می کند. به هر حال گشتگله های شهری باید نفعی هم به سرمایه داری برسنند. من که عاشق سرمایه داریم. بالاخره یک روز عکاس ماد می شوم و فشن تیوی 24 ساعت نشانم می دهد که دارم از مدل های خفن دنیا عکس می گیرم. نه از این اکاس دوزاری در پیته در نخور. عکاسی که دنیا روی اسمش قسم بخورد. یک سامان بگوید و صد تا سامان از بقرش بیرون بیاید. مدلم هم, هم زنی است توی مایه‌های های امم همون مدلی که اقواگرانه دراز کشید و عکاس ازش عکس گرفت و بی آنکه لمسی اتفاق بیفتد اروتیک ترین صحنه تاریخ سینما آفریده شد. سفیده بود که فیلم آگراندیسمان آنتونیانی را به من داد و وروشکا همان مدل افسانه ای را. برندهای بزرگ دنیا انتظارم را می‌کشند. ندا تو هم با من میایی؟ تو باید مهندس سازه گالری شخصی ام بشوی. گالری بزرگ و چند طبقه وسط نیویورک. چطور است؟ ارزشش را دارد. هنر و صنعت پا به پای هم که پیش بروند، جهان چاری جز کف زدن ندارد. ندا یک سوال خصوصی. میاند با نیما خوب است؟ ببخشید، نباید ناراحتت کردم حتما خیلی وقت از نیما را فراموش کرده ای امشب توی گرستان از پیلت بیرون میایی و من تک درخت توتت می شدم. بیا و آرام روی برگ های پهن من راه برو ذهن زمستانی من امشب پر از برگ های سبز و خوشمزده است دانشگاه ما یک درخت توت بزرگ توی حیاتش دارد یک بار از این درخت بالا رفتم تا عکسی جنجالی بگیرم و یک پاپاراتزی اساسی راه بیاندازم بچه ها فکر می کردن یکی از پسرهای دانشجو و یکی از استادهای زن توی آن کلاس هیچکس نبود ولی در عوض شاخه درخت زیر پایم شکست تا من باشم که دیگر توی مسائل خصوصی دیگران دخالت نکنم. همین حالا هم که میخوااستم ازت درباره این نیما بپرسم یاد آن درخت توت افتادم و پشیمان شدم. راستی از لیلا که آن شب تو رسان چه خبر؟ نجات هیچ وقت با من درباره لیلا جاهد حرف نزده ولی خودم دو سه بار با نجات خانه لیلا رفتم زن جالبی است. از آن زنهاییست که کم پیدا میشوند. یک ماده ببر واقعی. این گربه های گنده از گربه های شهری خیلی بامزده ترند. می دانستی بلا فاصله بعد از جفتگیری ببر ماده از نره جدا می شود و به سمت مخالف ببر نر به راه هیچ دوربینی تاره از ببرهای نر و ماده پا به پای هم عکس نی انداخته. من که ندیدم. ببرها تنها هستند مثل لیلا جاهد و حامد نجا. تو درباره نجات چه جوری فکر می کنی دارم سرت را درد میآورم با این سالهای فلسفی میگویی چکار کنم؟ تو که نمیایی باید هرطوری شده این سرما را فراموش بکنم اگر همین الان توی آینه نگاه کنم ناککه دماغم را می بینم که عین لبو سرخ شده دستمال کاغذی همرا هم نیست و با سراستین این پالتوی ایتالیایی هم نمیتوانم آب دماغم را پاک کنم مارکها هم بعضی وقتا حسابی دردسر می شوند. باید بروم از سوپرمارکت حیات پایینی گلستان یک بسته کاغذی جیبی بخرم ولی اگر تو این چند دقیقه آمدی چی قول بده تا من نیامدهام تو هم نیایی میخواهم وقتی میایی درست روی همین سنگفرشی ایستاده باشم که حالا ایستادهام نک دماغم هم قرمز نباشد و آب دماغم مثل آبشار نیاگارا پایین نیامده باشد احساس میکنم هنوز زود است به تو زنگ بزنم و بپرسم ندایی کجایی؟ راستش رو بخوایهی این دلشورهها برام خوب است میدانی چند وقت از دلم شور نمیزند؟ آخرهای رابطه با سپیده حتی اگر سپیده یک هفته هم به من زنگ نمیزد دلم شور نمیافتد ما که زن و شوهر نبودیم دوست پسر دوست دختری توی مملکت ما بد جا افتاده است ولی ندا تو با همه دخترهایی که تا حالا دیدم فرق داری ماجرای من و تو این یک فیلم پلیسی است فکر کن که نیما قاتلی فراری باشد و من کاراگاه و تو هم خواهر قاتل فراری نه من یک خبرنگار عکاس هستم عکاسی انسان دوست که با اکس که در اختیار پلیس می‌گذارد، باعث لو رفتن مخفیگاه قاتل فراری می شود. توی همین گیرودار دار آشق خواهر قاتل فراری هم می شود. پس تا وقتی من از سوپرمارکت بر نگشتم و روی همین سنگ فرش نیست ام نیا اگر یک بار دیگر به من بگویی که چرا با سراستینم دماغم را پاک نمیکنم کلاهمان حسابی توی هم میرود و دیگر نه من نه تو تو باید به عقاید من احترام بگذاری و دربارهٔ مارکها درست صحبت کنی. مخصوصا برندهای ایتالیایی مارکها صرفا همان لباس یا اتكولون یا شامپو یا چیزی که ظاهرا نشان میدهند نیستند پشت هر یکیشان رؤیایی جهانی خوابیده است مثلا وقتی موهایم را با شامپوی کلیون میشویم یا از هممام که بیرون میایم مام کلیون زیر بغلم خالی می کنم، در همان لحظه دارم رؤیای جهانی هم میبینم حتی اگر حواسم نباشد و ماجراهای رؤیایم در ناخداغا هم بگذرند رؤیای جهانی درست در همان لحظه چند میلیون نفر مثل من دارن موهاشان را که با شامپوی کلیون کفی کردن آب میکشند و تازه زیر دوش ترانه های عاشقانه هم می خانن. چند میلیون نفر دیگر بازوهاشان را جلوی آینه قدی بالا گرفتند و در حیرتن که موی زیر بغلشان چقدر سری رشد می کند و در همان حال مام کلیون به زیر بقلشان میمالند. اگر پای رؤیای جهانی در میان نباشد شامپوهای خمره داروگر هم موهای آدم را چنان تمیز می کنند که وقتی زیر دوش روی موهایت دست می موهایت قره چی صدا میدهد. تازه زیر بغل خیلی یا حتی توی چله تابستان نه عرق میکند نه زیاد بو میگیرد همین الان اگر به پشت سرت نگاه کنی و از آدم هایی که روی سکوهای سنگی نشسته و با چنگال پلاستیکی به جان سیب زمینی سرخ کرده افتادهاند سوال کنی به تو میگویند که این رؤیای جهانی را حداقل یک بار در عمرشان دیدند برای همین است که من ترجیح میدهم آب دماغم را فرتی بالا بکشم و مزه ترشش را توی گلوم احساس کنم تا اینکه با آستین پالتوی نازنینم دماغم را پاک کنم. دیرشوره چقدر خوب است. از راهروهای روشن پاساژ گلستان و حوض فیروزهای وسط پاساژ هم که آدمها دارش مینشینن بهتر است. توی این چند روزه هر وقت یاد نیمافقانی فقانی دیگر از خودم بدم نمی‌آید. این چند روزه روز آخر دبیرستان که یادم می آید، فقط قیافه نداد توی ذهنم برق میزند کاش که ندا ده دقیقه دیگر هم دیر کند تا بیشتر به کرمهای ابریشم و ببرها فکر کنم از همان دقیقه اول که به دیوار کوتاه گلستان تکیه دادم خدا خدا می کردم اکتوبان حمت قلقله باشد و پلیس راهنمایی میدان صنعت را بسته باشد و راننده ها به رادیو پیام که اخبار ترافیک را به سمع شنوندگان میرساند و بیراه بگویند. همیشه باید شناخت درستی از طرف مقابل داشت گوشیم را از جیب پالتام درمیآورم میروم توی فوند بوکش تا ببینم شماره موبایل ندا با یک شروع می شود یا نه سفر نه صد و دوازده صد و عدد یک بعد از سفر نه صد و دوازده می گوید که صاحب خط حسابی آدم حسابی است. سپیده خطش دو بود بگذار ببینم ندا هم که مثل من خط سه است چه تفاهمی برابری ما خطسه ها یک روز دنیا رو تسخیر میکنیم من بزرگترین عکاس مد دنیا میشدم و ندافقانی مهندس محاسب گالری خصوصی هم در قلب نیویورک صدای دخترانه از خودم بیرونم میکشد داشتی شماره من رو میگرفتی؟ به به خانوم خانومها میگذاشتی نصف شب میامدی نکاند ساعت شما به وقت افغانستان هست نابقه من که دیر رسیدم پس ساعتم حتما به وقت اروپا و آن طرف هاست